بلا. اومدم چند کلمه با شما صحبت کنم و برم اینکه من کی هستم و میخوام با شما چه حرفایی بزنم قشن مشخصه. البته برای خودم. برای شما هم مشخص میشه که به حرفای من گوش کنید. من رودی هجری بنفش هستم. اومدم تو این شب یلدایی قبل این که به یه مسافرت تقریبا طولانی برم یکم باهاتون حرف بزنم. تا امروز غیر اون چهار تا جمله همش خوشگل و رنگینی که یکی دو بار دست به شکسته براتون پخش شده، زیاد نتونستم حرفای خودم باهاتون در بذارم. البته بچه بودم. اون بود جوگیر بشم و یه سری حرفا بسرم که کلی داستان براش درست کنم. الان یه سر منطقی تر شدم. به هر حال اگه من میمدم وسط یه برنامه قمگین یا هنگ بندری میخوندم کسی نیم میمد رادیوی کچولوی مثل منو بگیره. همه میگفتن رئیس جان تو که عاقل و بالق و مشاله تحصیل کردی چرا به یه رادیوی کوچولو اعتماد کردی؟ نه میگفتن دیگه. مردم همیشه این بود که جناب رئیس منو از روز اول گذاشت تو کش های نه که زندانیم کنه ها اینقدر که منو دوست داشت منو اونجا نگه می داشت. یه لیوانم بود که عکس منو روش شست مونده بود. آخه منو خیلی دوست داشت و داره. باور کنید از این نقاشی هم گرفته بود. همون که یه ساعت کجوکوله توشه. اونم خیلی دوست داره. ال غسه جناب رئیس دو هفته یه بار جمعه ها منو می آورد بیرون یه دست محبت میکشید رو سرم. یکم باهام خصوصی صحبت میکرد و درد دل میکرد بعد یه سری حرفا یادم میداد که ساعت شیش بیام به شماها بگم وسی وقتا من خیلی در درمیآوردم و نمیتونستم اون چیزایی که میگر رو حفظ کنم یکم دیر میشد میشد ساعت هفت یا هشت یکی دو بار که به کل از م ناامید شد اون سری که تا ساعت اول نتونسته بودم خودم آماده کنم. یا اونباری که کلی ازیتش کردم تا حرفمو یاد بگیرم یه بارم دو هفته مریض شدم اصا نتونستم از جام پاشم و جناب رئیس به همه گفت که خودش خسته و گرفتار بوده معرفت گذاشت مرام که اسان محبتش تو دلم چند برابر شد یه پسر توپلی تو دلبرویم بود گاهی میمد به هم سر میزد و حالم از جناب رئیس میپرسید هر زیاد میزد منده خدا منی آخرش فكر نکنم چیزی بشه و حال دوست من بود خب دوسته زیادی پیدا کردم من درست اکثر اوقات تنها بودم تو شو همین وقتهای کم که با جناب رئیس میمدم بیرون به هم خوش میگذشت و دوستای خوبی پیدا میکردم همین شماها که الان دارید صداما میشنوید بهترین دوستام هستید شاید دیگه فرصتش پیش نیاد که بگم خیلی دوستتون دارم یه خانومه بود خونشون نزدیکای شهر رئیسینا بود اومده بود دوست بشه با هاما ولی درس و بیشتر دوست داشت با هم قه کرد یکی بود که خیلی دوستم داشت اصلا مهربون بود الان رفته خارجه از همینجا میخوام بگم خب عزیزم گاهی یه پیامی، مسیجی چیزی بده حال منم بپرس. منم دل دارم. یه پسره بود اوزا از او معلم فخیره بودا هی میخواست من زود بزرگ بشم ولی الان خودش shaftه شام شده. اگه صدای منو میشنوه میخوام بهش بگم دلش به دلم نزدیک بود. دوستش داشتم. یه خانومی بود قوقا حیف کم میمد پیشم ولی عکسامو درست میکرد. گیریم میکرد، خوشگلم میکرد جمعه ها. دلم براش تنگ شده. از وقتی رفت دیگه کسی دست به پسر روم نمیکشه. رئیس خیلی سر من صحبت می کرد با همه. میخوام بگم مهم هستم براش. چون هی می‌شستن می‌گفتن چیکار کنیم که بهتر آرش کنه و جوون رشیدی بشه. کم نازش برام. یه آقایی بود که با یه آقای دیگه مصاحبه کرده بود. یه بار اومد ولی خسته شد دیگه نیومد. اینا که میگم برای قدی نیستا. همین الان یکی از دوستام هست. یه خانم مهربونیه. همش ما برنامه هفتگی می‌نیست تا بزرگ بشم و رشد کنه. دوتا دوست دیگه دارم که صداشون کولاکه انقدر به هم آرامش میدن وقتی با هم حرف میزنن. من دوست ندارم از کسایی که باهاشون قهرم بگم ولی یکی بود خیلی دلم و هی اومد و رفت نمیدونم چی تو دلش بود ولی باهاش قهرم اینا رو گفتم که بگم اگه میبینید الان بزرگ شدن ملکی نیست دوده چراغها تو این اتاق و نزدیک این کشو این برونبر شده دوستای زیادی داشتم که به هم کمک میکردن. یه دوستی داشتم که اون حرفای خوشگل که سری قبل گفتم و بیشترش از اون یاد گرفتم خیلی پسر گالی بود درسته کم پیدا بود ولی هی به جناب رئیس می گفت زیاد بهم به توجه کنه هایخورده اعصاب نداشت. یه بوس پس همتون میفرستم دوستتون دارم زیاد که بهم به کمک کردین خوببد رو یاد بگیرم و من من بشم گفتم خوب بعد من هم مثل همه شما روزای خوبابت کم نداشتم. روزایی بود که جناب رئیس از کارای دیگه خسته شده بود و وقتی زیادی برای من نداشت تو اون روزا گاهی دلم میگرفت می میشدم و آهنگایی که جناب رئیس یادم داده بود و با خودم زمزمه میکردم گاهی میخواستم داد بزنم بگم جناب رئیس چرا جمعه من الان حرف دارم من الان میخوام بیا بیرون و حرفامو با حات درمیون من منم یه رادیوام دل دارم میخوام یه چیزایی از خودم بگم ولی نمیشد من کوچیکتر از اونی بودم که صدامو و کسی بشنوه بغزم و کسی ببینه قصم میگرفت ولی میدیدم که مهمم با خودم کنار میومدم و منتظر روزای آینده میشستم گاهی خوشحال میشدم شاد و شنگود رقص و این کارا حتی با جناب رئیس با هم میزدیم و میرقصیدیم یه بارم با اون پسر پسرتوپله رقصیدم یه چیزی بگم بین خودمون باشه جناب رئیس وقتی خوشحاله خیلی راحتتر میشه باهاش حرفزد ا درمیزنند سلام بفرمایید با کی کار دارید؟ من رادیوی همسایی بالاییتون هستم ای چه خوب همسای بالایی منم رادیو داره؟ آره ولی خیلی وقت دیگه با من کاری نداره ترجیح میده بره اینستاگرام. اینستاگرام کجاست؟ خب جناب رئیس هم میرست بره کار نه بابا تو موبایله رئیس همیشه به من میگفت موبایل خوب نیست یه باری یه برنامه چه میدونم اپلیکیشن انطوری درست کرد نیزی دوست نداره من آشنا بشم با یه همچین پریده هایی الانم رفته بیرون منو تنها گذاشته شب یلدا بود دلم گرفت گفتم بیام پیش شما من همیشه به شما حسودیم میشه چرا بابا حسودیدی که چرا آخه این دوستتون خیلی به شما توجه میکنه ولی دوست من منو دوست نداره همیشه بهم به میگه دوست دخترشو بیشتر دوست داره چی؟ نه بابا، واقعا من این نامون که گفتی چیه؟ حالا خودتون ناراحت نکنبی، بریم با هم باشیم شب یلدا رو. آخ جون از تنهایی تو طبقه بالای کمدیواری دیواری داشتم میپوسیدم. چی؟ دور تو, تو طبقه بالای کمد دیواری نگا می‌داره؟ من تو کشوی میز تحریرم تازه کلی هم ناراحت بودم از جام. وای خوش به حالت. دیدی بعد بهت حسادت کرد؟ هیچی. میدونی این دوست جون منم منو خیلی دوست داشت. ولی دیگه منو فراموش کرده. جناب رئیس همیشه میگه همه آدمای رادیو دارن. ولی بستگی داره چقدر براشون وقت میذارن؟ چقدر دوست دارند که روش کنه و مهم که کجای خونه نگهش میدارن ای hey بابا، تو شب اندازا برای قصه خوردن در این فراوونه حالا که تو هم اومدی پیش من یه دنبال چند تا دلیل باشیم برای خوشحال بودن. جناب رئیس یه شعری میخوند همیشه. نمی سنگو میزد به شیشه، شیشه رو می به سنگ. خلیصه میگفت غم نخور عزیزم. آخ آخ داش میرفت چند تا از دوستام هستن که منتظر من موندن چند دقیقه است بهتره برم با اونو خدافیی کنم با هم بریم تیکشوی من بشینی با هم صحبت کنیم دوستان از جونم، تو این شب یلدا میخوام بهتون بگم غم نخورید زندگی میگذره به جون خودم اون شعر رو هم بزنید تو سنگ هفتاد رنگ نشه راستش با جناب رئیس صحبت کردم بهم اجازه برم مسافرت شاید چند وقتی شما نیام ولی دلم پیش شماست قول میدم زیاد طولان این هشت ماستا فراتم خیلی خیلی دوست دارم قربون همه تون دوستتون دارم رادیو هجته بنافش خب خیلی خوش اومدی بذار برم تو این لیبانه که عکس خودم بوشه بردی کم آب مدنی میبهی بیارم بذار این طور روشن بشی مخوردم خیلی خوب بود توانورم اینقدر هفت نظر بودم که خودش به دوستان ترسیم اینکه؟ What's going was do machine